از شد که تابعه هم اشاراتی شد دیگه حالا دیگه مجروع شدیم به تفصیل بیشتری بارد بشین مرموهای اصفحانی و باقید مشهور محبر اصفحانی منکر حسن قبعه عقلی یا به تبیر خوده ایشان ذاتی شدن من هم الان اشاره می که در ای از موارد در این تعلیقه مبارکه شون مطلب رو اشارات دارم بعضی هم به یک تفصیل بیشتر و به مناسبت بحث تجری و تحلیل اینکه آیا اقاب حکم یا به حکم اعراض به حکم و هیئت تجری ایشان متعرض به حساب و یا عقلی هم شده است ایشون مجموعه در این طریق مبارک به حسب این چاپی که الان در هست در این شش جلی یک مورد در جل اول سه مورد در جل دوم و یک مورد در جل سه که الان دست ماست ایشان متصدی یک مورد در جل شهار در این شهار مورد این اصطلاح ش... برمه شش مورد ایشان متعدده این مبحث شدن مبحث تجری شدن و مبحث مزد... حسنگوخ ذاتی و عقلی شدن و منکر شدن حتی که مطالبیشون یکیه لیکن یک جاهایی یک چیزایی زیادی داره که با سوی بحثی دیگه ندرم و از پر که در همین جلد سوم در اوائل جلد متعرض این مسئله حجیت ذاتی که در قابل قلب هست اونجا هم شدن اما حسنگوخ ذاتی و عقلی تو این چند موردی که عرض کردن بهشون متعرض شدن که خب مسئله به اصطلاح مبنای کلیشان بسیار لطیفه یعنی بسیار محل کلامه و تصویرشان بر موارد همتون در بحث تجاری که هرسن در جلد سیست غیر از اون مطالبی که دیروز خوندیم که صفحه 28 شروع میشه مرحثی چند در صفحه سی دیروز خونیم سن من استقار على عقوبه حل هواه على الفعل و على مقدماتی کلع ازم یا اراده و حاضر تدید جارمت به المعثیت الواقعیه چه معثیت واقعی باشه چه خیالی باشه اصطلاح واقعیه در مقابل خیالی چه در جای اصطلاح ام... اصیانی چه در جای تجربی در وقت از الملات علالت هست بعدیشو بفهمند که و تحصیل خوب الالبر که بعد فعل استحقاق و حقوبت نه بر مقدمات لان نلعظم علا زلم من دون تحقق زلم لیسه به زلمه چون این شمید رو هم برنامه که ما حساب کردیم اونی که حرامه و و موچه به استحقاب زمه و عرض به تنهایی زلم نیست از لیسه مخلط به نظام شون امدش اخلاله به نظام بود ولا زا محصدت نوعیه یوجب تطابق آراء الاغلا علا قرحه البته حالا من دقیقاً دقیقا از کلمه یوجب و تطابق آراء الاغلا مرادشون چیه اما به هر حال این هم یک نقطه است به طور کلی اینه چون ما جدیه هم برده بکار برن در مسائلی که بر میگرد به سیر اون اوندش اینه که یا همه اغلا باید احراز بکنی مظلم رو هستن یا یک اکسیانیت 90% دنستر 80% دنستر اما اگر اختلافی شد رجوع بون سیره خیلی مشکله و نمیتونیم حتی از عدم تحقیز شاره مثلا اثبات یک را مثلا 50 درصد چست درصد از نمیشه استفاده بشه حالا در بحث بریم و به جمله على عبدو به فعل ما احرز انهو ببغوط المولا یک رجوع ان رسم لعبودیه و زیه رقیه زیه یعنی لباس رقیت هم بردگی از لباس بردگی و برده مولا بودن و عبد مولا بودن خارجشن لا به مجرد عظمیه علالفعل به مجرده بعدشون بعدیشون و معیدشون که انال حد که امرون قصدی چون امر واقعی که ایست نیست احترامه یک کسی که برای دوتاها میشه یک کسی ازش جایش میشه نمیشه ممکن را احترام باشه ممکن برای یه حانت باشه متعصدی و قصدی این فعل خارجی خودش نیست بیره لالم یستهق علیه لقا ولم یه تصفیل قوه نه اون من صفات الافعال الاختیاریه چون از صفت فعل در جایی که صدق لکنه حدکه این قصداشو بشه حدیه فلا منطبق اله حد علا مجرد اله عظم القص و هم دیگه نیمیشه خوده به اصطلاح به صلاح عظم حدی لازم لزمه اما عدم و کون اله حد یا باید بگیم عظم به ماه و عظم به ساقبیه نه که به ماه واعت ک او چون در قصد قصدی یا همون اشکال معروف تسلسل لازم میشه قسم قصدی بشه و علامه جذب و امکان کونی كذلك و کفایت او فی ذلك کما نبهنا الا ذاک فی کتاب لا یوجب الوقوع دائما اگر این طور قصدی باشه باز این دائما حرام قبیح نیست من به بسلا از و هر که دائما قبیح نیست معنه هو یسحب العقاب علی حدکی فی جميع مواسج در جميع مواسج در فقط تابع از نیست الا اون لازم بعد ایشان یک اشکالی رو به از مرحوم آزی آلا یه نظر ایشان آزی آسیا مثلا چون ایشون خب هر دو با آزیا شاگرد اخوندن یه اشکالی رو از که در کلمات آزیانیشون نرمه و امل اشکال علی المصنف و عنوان الحدکی و الجرعه علی المولى است یستقو علا قصد و علا عزم که الان فعل که چون مرموم صاحب کفایی قائلی که قصد حرف که بر همون عزم صدق میکنه ایشون میفرماید که مرموم آزیا میگه هم فعل حد که هم عزم هر رو فقیر و وجیه این اشکال درست نیست از بعد پرز صدقی علا قصد یه از طرز مترتب اقابه این شد یه حرف صاحب رسول که ما احتمال نیم مراد صاحب زمین باشه ایشون میگه اگر قصد هم باشه یعنی از من حقی باشه فعل هم باشه رازم میاد در هر محصه دو تا بشه. بشه لتحق الملاقی کل من قصد الفعل چون هم قصد حقی هم فعل و همان مقبولتان متباینتان لیزه بین اما اتصال علا حد اتصال امور تبزیجیه لیکون الکلوه حق تنواح اون یک حقیه اون یک مقبولتان ی بله بنا که علالفرز معنوان به حال الانوان یکی عنوان فعل یکی عنوان خمره، یکی عنوان قصد عزمه هر کدام که بخواد قویه باشه دو تا عنوان جزاگانه است دو تا حکم جزاگانه دو تا ملاک استحقاق و جزاگانه داره فستحیح و من و انتباق الانوان موجه به للاستحقاق فعل علالفعل اختیاری مگر در فعل اختیاری از اینجا ایشان وارد یک بحث دیگر میشن و اون مسئله این که اون چی که موجه به استحقاق مدهه یا زمه یا عقوبت باید فعل اختیاری باشه که اون فعل اختیاری همون ظلم بر مغلا و خروج از رسم عبودیته همون قصدی که ایشان داره و اما تطابق و عدم تطابق این بله تابع اون بل از این فعن قلت و از این انقلت ها صفحه سی و یعنی صفحه سی یک سه یک مقدر راجبی این که آیا این فعل ارادی هست یا ارادی نیست این رو متعرض میشه مخصوصا یک اشکالی ساب کفایه دارم در کفایه کمتر اما در حاشه بر رسائل که اصلا در اینجا اون چه که اصلا فعل اختیار ازش پیدا نشده چرا؟ چون قصد شرب خمر کرده شرب خمر پیدا نشده قصد آب نکرده آب پیدا شده با آب فسان قصدی وجود نداره اینکه این اشکال بردها در کلمات بعد سال شده، خیلی مطرح شده خلاصه جوابیشان مرمومه ساشوانس انسانی و دیگران خلاصهش اینه که فعل اختیاری ازش ساده شده و اون فعل اختیارش بازه قصد من مولا این آب را هم این مایع خارجی هم به همین عنوان خورده همین مقدار در حد کش کافیه این یک مقداری دو سطح راجع به فعل اختیاره و بعضی است که احتمالا ایشون نازل باشد و با ایده ای دیگری هم اصحاب دوره من هم آشادو کردیم حاریس و ایده بله خلاصه بحث بله خلاصه بحثی که ایشان داره در اون صفحه سی و تمامش خیلیم این بحث رو که در اینجا حالا کلوفی ارادیت اصل فعل و اما حق فلا واقع اله ما دنبال حق هستیم این واقعی نداره الا الفعل احرزه انهو مبغوظ مولا امدش اینه حق دنبال این عنوان فعلی که مبغوظ مولاست و یا توجه القصد و قصد بین فعل به توسط احراز المخالف للواقع ولا واقع اله القصدی. عنوان القصدی عنوان قصدی غیر از همون قصدی دید ندارد یکو قصدی کلشی این کلو فعلم بالقصد و قصد نفسه و من الواضح انه حد که حرمت المولا به شروع امرون معهول ما دنبالیم بعد از این اشکالات ارادی و غیر ارادی بودن و هو واقع اول حد که اختیاری و توهم ان عنوان حد که حرمت المولا و از ظلم و کردم تعبیر اینا فراوانه که حد که مولاست جرعت بر مولا ظلم بر مولاست لایت حقق الا فیفرز وصول تکلیف با تکلیف برسه منجز بشه فمخالفت و تکلیف الواصل مثل آقل حد که و از ظلم ولا علم هنال تکلیف اه بلا با و, و مرکت موجب ولا موجه حکم علم ال جه نمیشه که حکم علمو به جهل ایسی بدونی. سرایت بدیم مرکو آن به ان تکلیف به وجود اله واقعی کمالایی ممکن ان یکونه مناکی رحمت رحمت که و ظلم چون تکلیف به وجود واقعی که معیار حق چون که ممکن تکلیف واقعا هم باشه بهشون اصلا قصد نکرد لیست من رسوم عبودیه امداری و خالق تکلیف لو کلاله لیست لای ممکن ان یکونه به وجود واقعی دخیلن فی تحق و غل حق و ظلم خلاصش ایشان؟ خلاصه حرفشون در اینجا اینه بدل موضوع حکم عقل این خلاصه پل بحثه موضوع حکم عقل که قبیه هست و حق مولاز و ظلم علم مولا موضوع اینه ما هو الحاضر و اندهو فی وعای وجدانه هر چی دیگه در وعای وجدانه خودش حاضره اگر خلافمون حرکت انجام دیرشه هست این خلاصه هست این خلاصه کل بحثیش بل بله موضوع لحکم العقل ما هو الحاضر و اندهو فی وعای وجدانه فنفس حرکت علا خلاف ما احرز نه و و مولا مغووز و مولا به ما هو مهرزان فی موضوع موضوع العقل این دو تا کلمه خلاصه اینه که ما میاره در واقع عقوبت و عنوان ظلم و حد و جرأت بر مولا می شونیم و این موضوع دنبال واقع نیست دنبال تکلیف واقعی نیست بلکه دنبال احرازه همین که احراز که از مبروض مولاست این موضوع محقق شده و بعد است حکم اصیان برش بار می شود مستحق عقوبت این دیگه حالا بقیه ایشان که در ارادی بودن هست خدا های موجود. اما در مطالب دیگری که ایشان دارن در این جلد دو اگر آیا خواستن مرارزه بفرماین در این جلد دو چون یک نکات لطیفی داره اونجا اشاره بکنم در جلد دو ایشون در چند جا متعرض در این صفحه 396 جلد دو از همین چاپ به استدا ایشون بحثی دارن در شماره تعلیله شماره هاشیه 238 شماره هاشیه ایشان بر کتاب کفایه این بحثی دارن به مناسبت عبادت ذاتی اونمت میگه فین قلت ملا کل و نی حسن المتعلق و قبحه ولا یعقل انیکونر حسنا به ذات قبیه هم بالعرز او به ذات ف النزاتی لایت خدا. این بیای موناسیس فلورسون گفت ذاتی است. اونجا هم متعرض شده. قول تو لیسل مراد به حسن ذاتن انلفیل تام ثامته در الحوز. او اول عنوان الحسن من ذاتیاتی یا مقادماتی. این هم در همون جایی گفتن در این کتابی که اینجا چاپ شده نوشته در شماره تریگری شماره دیویس هست. آمده این محله این تحصیحی این کتاب انصافاً خیلی کار سنگینی بوده و خیلی جمز از این نهایت درایه خیلی اما خب این اشتباه چاک شده این من مخاصرین الان توسیشون ممکنه این مراجعه بکنیم پیدا نکنیم در این جلد از کتاب در صفحه 377 شماره 214 224 این, این غلطه 224 مختصه اما در شماره 214 در تعلیقه شماره 24 خوب اگر آن خواستن نگاه بکنن در اونجا هم ایشان داره دو منطقه باید. که سرخیلی 377 هفت میشه ولی ایشون هم به استدا داره یک نقطه اونجا یکی در اونجا دارند در شماره 24 ایشون همین حالی در این حال من شماره 346 شماره 238 نمی بیش همون حرف رو میزنن بلی المراد من از ال ذاتی ان الفعل لذاته ال لاد انتباق و, ان و آخر یکون و حسنن. و هو علا قسمه طالتن یکون و فعل علتن تاملل و اخران مختزی هم لر فالاول کل اول و سانی کسی ها با المشهور مشهور اینجور گفتم و اما على تحقیق فشی اما ان یکون با امرانی حسنن به معنی انال موضوع به حفظ عقل عملی به حسن نفسه این در حاشه نوشته این باید نیست نه باید مشکل داره موضوع خود اون عنوان نفسه ای اینه خود عنوان خودشه معدف النظر عنوان آخر وحوال حسن و به ذات به این مالایه به عنوان حسن سوان لکان خلیات هم این طبقه علیه عنوان حسن کسه اون تقسیم سلاتی که من کردم یا و قداره اللذ تامنسی ها محتضیستی یا لاستزاد بعض ایشون می که این مستقی که ما در تفسیر ظلم هم اصدوم گفتیم بهتر از اون تفسیر مشهوره پس یه جه دیگه هم در جلد شماره دو همین سخهی که از کردن. در همین جلد دو در زیر تعلیق خوب دقت، این دیویست و چهارده در کتاب چاپ شده قلط دیویست و چهارد در جلد در شماره بله دیویست و ایشون اما تأثیر الاضافت فلخسن القوه عقلم فا این ارید سببیت و عنوان الیکرام و غیر معقول بعد ایشان تو همجب واضح بحث میشن و این ارید ان الاضافت مقردمتون دل عنوان الحسن به معنی ان اکرام العالم و عنوان حسنان فا اوازن واسه الفساد ازلی سهاز الانوان من المعاناوین الحسنه و این انداری سهت اونوه هستن حاضر اینی چی بوده؟ مر من مقدمه, في مقدمه, في مقدمه في در جلد در جلد یک هم در جلد همین دو در اول بحث مقدمه هم ایشان دارن من ان تحسین و تقبیح الاغلیه مورد همه المشهوره که قضیه من القضایلتی تسابق تصادق عليها آراء العقلا نظام و اقعاند نوم ایشون را باز با در همین کتاب در دو وارد این بحث یک ایک نکتی دارن که من الان تخوام این نکته رو بنا هم بعض الافعال و زم فائل بعض الاخر فلا مناقصه بینن حسن ذاتی اندل اقلا به ماه و مقلا و عدم محبوبیت ذاتی اند شاره محافظ نداره که حسن ذاتی داشته باشه اما محبوبیت ذاتی بشه شاره به ماه و شاره شاره احکام مولاییست یعنی خب که مولایی نداشته باشه فلجهت الموجبل مذهل اقلا غیر الجهت الموجبل ایجاب شاره مولاییم ممکن است از آن اولاد تابع مال مد... واجد مالی باشه، اما حکم او لب نه. مثلاً اصل اغلب ما روی تعظیم او حسنان اندل اولاد، فعلاً هو عادلون فی العبودیه. هیچو اند تعظیم العادل مولاف کلیتاً من مختزایات من مختزایات رقیع و رسوم العبودیه تعظیم عادل. حال جاییه علاوه فقها عادلون یعنی هفته به النظام الا انها غیر و محبوبیت محبوبت اندشاره به لحاظ انحفاظ نظام بها به لحاظ انحفاظ محبوبیت که که بل من جهت استکمال مکلب بها از جهت کمان خیزو انها من المعدات لزوال زمان الاخلاق المعد بر انها و انها تنها عن الفحشاء برمونی کرد عبارت این این جدیده که ان یک چیزی رو به نام استکمال در نظر میگیرن یه چیزی رو به عنوان حفظ نظام اونیکی در حفظ نظام اینی که خوندم امروز خصوص در این نکته که برای حفظ نظام به حکم عقل که برای استکمال به عنوان شریعه این کاری که در اینجا تازه داره این جری و علاوه سین اب عبودت ادلن یعنی حفظ رو نظام. الا انها غیر محبوبت شاره بلحاظ این حفاظ نظام بعد محبوبیتش برای شاره من جهت استکمال ها نه از حفظ نظام شاره میاد از جهت کمال مکلب حالا بخواد نظام باشه یا نباشه حیث و من المعداد لزوال زمان من اخلاق اخلاق زمینه اخلاق بعد المعد بر انها برای انها تحنان فحشا و المنتر سوالی که الان با ها شانس هست که این شاء الله پیدا عرض میکنید همین قسمته که بین این دو تا ایشون میگه به لحاظ حکم فقهی ما دنبال استکمالی هم یعنی اگر بخوازم کار به نزاح نداره هم شبیه شو پیشونده ولی مکلف تنها باشه اما به لحاظ حکم عقلی یعنی حسب عقلی این دنبال نظامی درک یعنی ایشون بله این محبوبیت یک چیزی به نظر شاره به لحظه استکمار مکلبه نه به لحاظه حفظ نظام یا تعبیلی که چند روزی من ارز می کنم. به یک پدیده اجتماعی است یا به لحاظه یک پدیده تربی ایشون در حکم عرض پدیده اجتماعی می بینن که حفظ نظامه در حکم شهر پدیده فردی می بینن که استکمال مکلبه منجرد استکمال مکلد حیث و انها من المعدد زباد زمام الاخلاق المعد برعن و برعنها تنها هنال فحشا برمان کرد این نکته دیگری که در اون بحث امروز که از این جدی که امروز میخوندیم این نکته در اونجا نیامده در زیل این عبارت یک دفع دیگم در این کتاب مبارک در همین جلد دو ایشون متعرض این مسئله شدن و به یک معنایی یک مقدار باز تفصیل بیشتری از فرمودن این در در این کتابی کلان دستانه در یکی دو جاش که حوال داده باز نوشته تعلیق شماره پنجا و تعلیق مختصر یعنی در حدی که میشه بود. اونم اشتباه چاپ شده صحیحش 52 و دوه. تعلیق 52. تقریبا اون بحث امروز ما که محیار ثواب و اقاب و این هاست به نحر بهتری در این تعلیل شماره 52 آمده چون عبارت مرمه اسحانی اسفانی متفرقه آمده من از فرنا یک جا ببین ایشون در بحث برده لارای بفی و صحابه لارای بساله اف ایشون اولا نوشته اینجا یک نقطهی داره این نقطه رو جای دیگر هم داره حالا من نخوندم جای دیگر بار یه بحثی که مراد از عقل عملی آیا همون عقل به اصطلاح نظریه یا دو تاست ایشون یه معنی بین وسط میگیره عقل نظری و عقل عملی رو چون یک تفسیری هست که عقل نظر عملی چیزی مستدل نیست همون عقل نظریه یعنی انسان ادراک میکنه خداوند متعال یه نظامی برای جامعه قرار داده شده و نظام ساله جامعه اینه اقل، این یعنی همشویی که ادراک میکنه مثلا فوازی گیاهان رو تب رو فیزیک رو شیمی رو این رو هم احراز میکنه انسان چطور اضاف میکنه یک واقعی این بزرعقایه احراز انسان این یک مثل هم. که عقل عملی کلن مندره در عقل نظریه یه مثل دیگه این ای که نه اصولاً واقعا عقل عملی و نظری دو دوتاست عقل نظری اون قدرتی که سر میکنه انسان حقایه درشار درد بکنه و حالا اشار و بعد اشاره بعد ایگه اشاره کنمان یارش برمگله به اصال تعدمشت و نقیزه و اعدم تناقض اما در اقل عملی که انما یک نیرونی در انسان هست که انسان وادار میکنه مجرد ادراک نیست، قد کردیم مجرد ادراک نیست؟ نه انسان رو به کار خوب وادار میکنه از کار شد نگم دو نیرون در انسان هست یک نیرو که اون رابطه میده با خارج برای کش واقع این رو عقل نظری یک نیرو گفت او رو وادار میکنه این کار بکن این کار نکن حالا در درد در در در از عباراتشون به این تصور کرده که مثلا چون وادار میکنه پس مثلا زندان و شلاغ و عقوبت نه این مورد از وادار در حد استحقاب مدوزن به تعبیر ایشان در حد این که این حسنان ها. اما این مجرود ادراک نیست. اضافه بر او یک واداشد این مسئله که میخوایم اجازه وارد بشیم اینه آیا در واقع ما دو سرخ ادراک داریم یک سرخ ادراک که ما رو با واقع متصل باشه دیوار جنسش چیه مثلا آب جنسش چیه خاک چیه گیاه چیه مثلا چیه انسان چیه حیوان یک سرخ اینه یک سرخ میگه نه شما با این چه کار بکن اصلا گوشت حیوان بخور گوشت حیوان نکن بعض این تحبیر دارد فرق بین ماده و شهوات یا دنیا وید میتونی دنیا رو دو منامی پکن ماده, ماده وجود شیفی نقصه هست شهوات, شهوات یا شهوت برخورد انسان با اونه ما دو نقطه داریم یکی که چی هست در خارج یکی که ما با این چه کار بکنیم یه میروی در انسان هست این به حد کلامه عدهشون حتی در حد بزرگ نه چی نیروی نیست فقط ما ادراک میکنیم و ادراک هم در حد واقعیاته اصلا ادراک جد فعی نه ما فقط ادراک میکنیم که مثلا این با مثال این دیوار اگه مثلا سه متر باشه سخت هم اینجور باشه نمیوفته ما فقط این ادراک میکنیم نه این که این سقف رو اینجور بساز این چین چیزی نداریم ادراک بشری حد ادراک بشری، ادراک حبایه اشعار تو این ترتیب من ما شما که حرف وسطی رو میزنیم میگه ما یک یکیه اما مدرکون دو تاست این همیشون داره، این شده در بحث عبود نمیشون بشه بود این رو ایشون داره ام در مراد بالعقل الحاکم بالاستخاب حوالعقل و العملی الذی من شعنیه انیو داره خود قصد نیم ماین بغیر فعلوه و اوترکو. یه جای دیگه هم ایشون داره غیر از اینجا جای دیگه هم داره که ایشون عقل احمدی رو ایشون اینجا میکنه بس نه به عنوان با واداشتر به عنوان ادراک اما دو تا ادراک هم نیست ادراک یکی یکی ادراک مثلا این دیوار 3 متری یکی ادراک مثلا یغمی اینکه دیوار ما 3 متری باشه این یغمی که الگویا همین طرز کار اینم ادراکه ای القوة الممیزة للحسن و القوة لیکن به اعتبار مدرکاتی هی. این حسن و رو به اعتبار مدرک گرفته و وحی المقدمات المحموده والآراء المقبوله اند آمت الناس این تفصیل یک تعدیر دیگر از محقق اسفانی راجب حسن و قوة هزاتی میگه حسن و قوة هزاتی اینه الآراء المقبوله اند آمت الناس الموجبه لحکمهن به منحل فائل او زمین فالموجبه لکذا و کذا ببینید هیل معقولات للقوه الاتی لیس شعنها الا الادراک شعن قوه بغیر ادراکه بعد میگه و المراد و بالاستحراق لیس ایجابت سواق علال مولا اول اراغ کمایش اروبی لفظ استحراق بعد که بعد تا الان یهود بل مراد ان المدهبت هم دو ست ستیشون نکنده علا اطائفی محله نذیر قوله این به استحقاق المدهب و الزم علا فائل اون اقاب رو هم مثل المدهب و الزم میگینه فه انهو لیسن مراد ایجاب المدهب و الزم علا مراد این نیست و اغلا مدهب هم بل المدهب و الزم و من هم من احد الامره فیل محله اون رو دنبال بحثی مونن که مثلا تجاسم اعمال در روز آخرته که حالا اون بحث میشه در اینجا در هاشیه شمای پنج و که مردم سید مرموم ها شما سم دارن یک هاشیه مفصلی دارن این هاشیه مفصل این هاشیه ایشان با اینکه در بحث مقدمه باید شده این بهتر به ما نه و فیلم میخوره و <تصفيق> عکس مطلب هست این حاشیه مفصل ایشان در زید تعلیق پنجاب و دو این آن در جلد دوم دو همین مطلبی که ما دیروز در جلد سه خوندی که یا مثلا استحابه و به حکم شارع و به حکم این رو ایشان اینجا مفصلتر آورده و بهتر هم آورده خیلی عجیبه اینجا از بحث تجری بهتر آورده چون اینشون اینجا یا قول به ثواب اقاب یا به ملاحظه جعل شارعه یا به ملاحظه حکم عقله یا به ملاحظه علاقه لزومیت بین فعل و مایات را تا درمان احنافی بیروز اگه یاتون باشه دو تا احتمال داد اینجا سه تا احتمال داده وقتی احتمال اول که شرق باشه یک بیانی هم کرده که چرا شرع شرقی باشه از باب قاضی لطف قرازم علا خلاف القاعده ایشان در این بحث هاشیهی تعلیمشون بر مقدمه واجب این هاشیهش به در تجربی بهتر میخوره انصافا ایشون در اینجا شرط بیشتر داده اگه نمی کنم به خدا همه حاشیه بفرمایی اینجا شویه اشاره کردنه برن نه اشاره این هم مورد سه موردیست که ایشان در این جند دو مطلب رو شرح دادن اون نکاتی که در کلامی ایشان هست یه مختصرش میکنم که فردا انشالا بارده بررسی بشه یکی فرق بین عقل عملی و نظری که آیا فرقشون به چیه آیا فرقی دارن یا نه یکی فرق بین حسنقوبه عقلی و لزوم استکمال شرعن آیا این لزوم استکمال شرعی هم این همه حسنقوبه عقلیه و بعدشن بیان دقیقه مصنقوب هزاکی که گفته شده که آیا معنای هزاکی کدوم یکیه کتاب بیساقوجیس یا کتاب برها سال الله عالم محمد و آله فتحه